ولم السيف ولم جبين بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد وثناء وستايش بخداوندي یک تا و بهم تا درود و صلوات فراوان بر الله صلى الله عليه وسلم برادران مهاجر ومجاهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته و 25 جمعه برنامه هفتواری زبانی زبان دری خوش آمدید خداوند زل جلال را سپاس گذاریم که به ما فرصتی را محیا نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جندالا به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله هم عزیز امروز جمعه تاریخ 16 شعبان مطابق 6 جولای رادیو صدای صدای جندالا نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ایدامه میدیهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشد موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجاشی افته است قرار زیل است سلسله اندرس ها مرواریدی هفته موضوع انتخابی ما قصه حضرت خالد رضی الله عنه در میدان جنگ و همین طور تحولات یک هفته با ما باشید سلسلی اندرس ها سعدی شیرازی رحمه الله در مورد نصیحت نپذیری می فرماید آهن را که موریانه بخورد نتوان برد از او به سیقل زنگ با سیه دل چسود گفتنی واز نرود میخ آهنی در سنگ ارزش به کیفیت است نه به کمیت از پیتازی وگر ضعیف بود همچنان از تویله خر به افتادگی و فروتنی ای برادر چو خاک خواهی شد خاک شو پیش از آن که خاک شوی در بازار دنیا عملی نیک باید ای تحیده است رفته در بازار ترسمت پر نیا دستار چشم پوشی از طمع بی دوزد شرح دیده ی حوشمن. در آراد طمع مرغ و ماهی به دنیا مزرعی آخیرت است از آن خوب بهره بگیر به دنیا توانی که اقبا خری بخر جان من ورنه حسرت بری دوست آن است که مشکلات راه را به تو نشان دیهد بنزدی من آن کس نکو خواهی توست که گوید فلان خار در راه توست عبرت آموزی پند گیر از مسایب دیگران تا نگیرند دیگران به تو پند شخصیت مرد زیر زبان اوست تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد همکاری عزیز این بود اندرس های امروزی خدا کنک موردی پیسندش نواندگان عزیز قرار گرفته باشد <تصفيق> من البطولة والأمجاد نرويها فانخش على وجنة الجوزاء قولةنا، ليل الشهادة عز عز معطيها هذه الشهادة يا أبطال ملحمة من البطولة والأمجاد نرويها مرواریدی هفته شنومندگان محترم به بخش مرواریدی هفته خوش آمدید البته به همه شما معلوم است که ما در بخش مرواریدی هفته موضوعات بسیار جالب و شنیدنی را به خدمت شنومندگان تقدیم می نمایم. همینطور در برنامه امروزی نیز یکی از مطالب جالب را زیر عنوان قصه حضرت خالد رضی الله عنه در میدان جنگ اختیار نموده ایم که اینک من به خانش میگیرم. قصه حضرت خالید رضی الله عنه در میدان جنگ جنگی که به قیادت وی رضی الله تعالی عنه سپرده شده است پیروزی آن حتمی بود. به این خاطر حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که من خالید را به خاطر خیانت به امانت عزل نکرده هم. لیکن مردم او را بزرگ می داشتن، من از ترس این که ما او را مقدس بدانند عزلش کرده ام. بعد از اسلام آوردن، اولین جنگ سریه معوته بود که حضرت خالد رضی الله عنه دران شرکت نمودند. در این جنگ ها حضرت خالد رضی الله عنه خصوصیات مختلف از خود به نمایش گذاشتند به که حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم به ایشان لقبی سیف الله دادند. غزوه مائته در هشتم هجری جمادی الاول با وقوع پیوست این نخستین غزوه است که حضرت خالد رضی الله تعالی عنه بعد از اسلام آوردن در آن شرکت نمود و این غزوه با مهارت تدابیر و تکتیک های جنگی ایشان به پیروزی رسید حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلام به وسیله حارث ابن عمیر نامه برای شرحبیل فرستادند در تمام قوانین دنیا حفظ عزت و جان سفیر الزامی است لیکن شرحبیل بر غرور و مستی قدرت خود حضرت حارث رضی الله تعالی عنه را به طرز اصفناکه به شهادت رسان. اما از طرف دیگر مشغول سرکوبی یهود بودند. همین که از اون طرف سرکوب کردن یهودیان اطمینان حاصل نمود برای قصاص گرفتن خون حضرت حارث بن عمر رضی الله عنه لشکر سه هزار را به طرف شرحبیل در بصره رمانه کردند. رهبری لشکر را به زید بن حارث رضی الله عنه سپردند قبل از روانه کردن لشکر رسول الله الله علیه و سلام پیشنهاد کردند اگر زید بن حارث رضي الله عنه شد بعد از وی جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه رهبری لشکر اگر وی هم شهید Hazrat عبدالله Akram, رواحه تا محل ثنیت و لشکر را همراهی نموده بعد از آن برگشتند. موته سرزمینی کوچکی از شام است. هنگام لشکر اسلام به موته رسید، شرحبیل برای تحقیق مختصر در لشکر اسلام برادرش صدوس را به همراهی پنجاه سوار به آنجا فرستاد. بعد از رسیدن کفار به این مکان، جنگ با لشکری مسلمانان آغاز شد. چنانچه صدوس به حلاکت رسید، هنگامی که شرحبیل از قتل برادرش با باخبر شد در وجودش خوف تاری گشت و به قلعه پناه برد. از آنجا برادر دیگری خود را برای طلب کمک پیش قیصری روم به یلغار فرستاد. چنانچه او به همراه آن لشکر صد هزار نفری فرستاد. بعضی از تاریخ نویسان میگویند این لشکر از صد هزار نیز بیشتر بود. هنگامی که مسلمانان از این لشکر باخبر شدن نگرانی از هانی آنها ر بعضی پشنهاد دادن که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در جرایان بگذاریم تا اینکه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پشنهاد عقیب نشینی دیهند یا کمک بیشتری برای ما بفرستند لیکن عبدالله ابن رواح رضی الله عنه اراد خطبه فرمودند ای مردم شما از شهادت نترسید برای همین هدف شهر خود را ترک کردهید هج وقت مسلمانان از عده و عده لشکر به پیروز در جنگ بدر تعداد مسلمانان خیلی کم و تعداد دشمن خیلی زیاد بود. سامانی جنگی فقط دو اسب همراه ما بود، لیکن با وجود اینکه کفار از سامانی جنگی و تجهیزات زیاد برخوردار بودند، خداوند به ما فتح و پیروزی عنایت فرمود. خداوند با ما و پیروزی فرمود. در این وقت ما دو حالت داریم، یا پیروز بشویم از مجاهدین، جنگجویان و مبارزین محصوب می‌شویم، یا شهادت نصیب ماست و در نایل شدن به درجه عالی شهادت ملاقات دوستان نصیب ما می شود به طوری که در هر صورت رضایت الله تعالی را به دست می آوریم و این هدفی اساسی است همه صحابه رضی الله عنهم سخنان عبدالله رضی الله عنه را پذیرفتن به طوری که مؤمنین و مشرکین در مقابل یک دیگر برای جنگ بزرگ صف آرایی کردن بعد از شروع شدن جنگ حضرت زید رضی الله عنه که لشکر را رهبری می کرد به شهادت رسید و بعد از آن حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه پرچم اسلام را برداشت و شروع به جنگیدن کردید اسب ایشان زخمی شد و ایشان بدون سواری به جهاد با کفار ادامه دادند. ناگهان شمشیر کافری بازوی راست ایشان را قطع کرد پرچم را با دست چپ خود گرفته هنگامی که را هم قطع کردند. پرچم را بادو دو وسطی بازو گرفتن در این موقع کافر دیگری از قسمت کمر به ایشان حمله ور شد و ایشان را بدونیم کرد و به شهادت نایل آمدند بعد از آن عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه پرچم را برداشتن و بعد از کشته شدن تعداد زیادی از کفار خودشان نیز به شهادت رسیدند روحیه مجاهدین در جنگ به طور کامل بعد از شهادت سرداران نامدار اسلام بنا امیدی کشیده شد همت کفار بیشتر میشد و بعد از بشهادت رسیدن عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه و با افتادن پرچم اسلام به زمین، کفار میخواستن پرچم اسلام را از روی زمین بردارن که ثابت ابن ارقم رضی الله عنه پرچم را برداشتن. و اسلام را که در این موقع در خوف و حراس بسر میبردن، با این جمله موردی خطاب قرار دادن که یا معشر المسلمین استالحوا على رجل منكم ای گروهی مسلمین برهبری شخص از خود متفق شوید من به خاطر حفظ نمودنی مبارز نمودن پرچم اسلام مبارزه نموده ام و حق کسی را غصب نکرده ام لشکر اسلام در جواب فرمودن راضی نبک ما برهبری تو راضی هستیم ثابت ابن ارقم رضی الله عنه در جواب فرمودن ما انا بفاعل فاستالحو على خالد ابن ولید من صلاحیت انکار را ندارم شما برهبری خالد موافقت کنید در حالی که مسلمانان بر این امر اتفاق کردند حضرت خالد رضی الله تعالی عنه را با عنوان رهبری لشکر قبول کردند حضرت خالد رضی الله تعالی عنه پرچم را از حضرت ثابت رضی الله عنه تسلیم گرفت فرمودن. فرمودند همه قبول اما مردانگی دلیری و مهارت در تکتیک های جنگی از فضایل شماست به هر حال من پرچم را به خاطر تحویل دادن به شما برداشتم بعد از برداشتنی پرچم خالد رهبری سپاه اسلام شدن ولی مسلمانان که خوف زده شده بودند، پا به فرار گذاشتن بعد از مشاهده این منظره با اشاره حضرت خالد رضی الله عنه قطیبه ابن عامر شروع به صدا زدن نمودند. ای مسلمانان من از شما میپرسم که شما از ترس موت به کجا فرار میکنید چون که موت هر کجا شما را در میابد پس چرا در میدان جهاد همانند مردان نمیروید؟ کمی فکر کنید جهاد کردن در راه الله تعالی و به درجه شهادت نایل شدن بهتر است یا مثل افراد بزدل و نامرد فرار کردن و از پشت سر تیر خوردن و جان دادن و مردن به زلت و خاری؟ بلکه هرکس که در دنیا از ترس موت فرار کند، به عنوان شخص نامرد و ترسو و زلیل به شمار می رود. موفقیت بزرگ برای مؤمن این است که با قدرت و مردانگی مقابله نموده و با زخم سینه به ملاقات معبود حقیقی خود بشتابد. آیا شما نمیدانید که فرار هم کنید، نه تنها بزدل و ترسول قب داده می بلکه هیچ یک کفار شما را با رسیدن به خانه امان نمی دیهد. و شما همانند بوزدلان خواهد مرد لذا بهتر از با مقابله کردن با آنها پیروز شوید یا شهادت نصیبتان گردد این است مردانگی بعد از شنیدن این خطبه همه مسلمانان جمع شدند حضرت خالد رضی الله تعالی عنه لشکر را ترتیب فرموده از پیشروی به سوی دشمن جلوگیری نمود کارزار به همین میروال ادامه داشت که وقت غروبی آفتاب فرار رسید و هر دو سپاه به جایگاه اولیشان بازگشتند هنگام صبح قبل از شروع جنگ حضرت خالد رضی الله عنه لشکر را که روز قبل در سمت راست می‌جنگیدند در طرف چپ قرار داد و لشکر چپ را به سمت راست آورد کفاری که روز قبل لشکر را دیده بودن گمان کردند که شاید برای مسلمانان دیشب کمک رسیده باشد به همین علت بود که کفار به خوف و افتادند و نتوانستن مقابله کنند ازا پا به فرار گذاشتند الله تعالی خالد رضی الله تعالی عنه را منصور و پیروز گردانید و لشکر کفار شکست خورد دلیری، تکتیک، تدبیر و اندیشه جنگی که خالد رضی الله عنه در جنگ معوته و کار برد در تاریخ نمونه ندارد که جا امکان داشت که لشکری هزار نفری در مقابل لشکر صد هزار نفری پیروز شود Am Mah hosnitatbiri Hazrati Holy draw Yallahuanhu, Bait shoot a khaliyat, bar akhtariyat, piruz gardat, can me fiatin khali latin wala bat fiatin kathi latam bi isnil. Yani Chiba so guruhi andak, kibahok mwa irody elohi, bar guruhi bosyor, piru should ask. Mutabik body wayati motabar, darjangi mauta, badasti mubora kihazrati holi dibni wali drahu anhu, nusham shir, shukas و بعد از فارق شدن از جنگ معوته حضرت خالد رضی الله عنه به طرف مدینه حرکت کردند در میان راه قلعه وجود داشت که هنگام گذشتن لشکر اسلام از آنجا برایشان مزاحمت ایجاد میکرد حضرت خالد رضی الله عنه این قلعه را فتح نمود و در زیر پرچم اسلام در آورد و این امر باعث ملقب شدنی وی به سیف الله گردید این بود مطلب جالبی هفته در بخش مروارید تا موضوع جالبی دیگر خداوند حافظ و ناصر و البخل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 کنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی رسید. البته در این بخش از تحولات داغ هفته شما را با خبر می سازیم. روز جمعه نوی شعبان مطابق بستانوی جون. چندین تن از مجاهدین اوایل روز جمعه در ولسوالی کامدشی وریاتی نورستان حجوم بردن که در نتیجه آن حداقل ده تن کشته شدند. که در جمع این شدگان چهار فرد ملکی و شش ماموری امنیتی شاملند مقامات در نورستان گفتند که حداقل 17 تن از مجاهدین به یک محوطه دفتری دولتی که کارمندان در آنجا زندگی می‌کردند حمله ور شدند گفته شده است که این زد و خورد 12 ساعت دوام کرد مامورین گفتند قوای ناتو حمایت هوایی را به مرتدین داخلی که با مجاهدین میجنگیدن فراهم کردند از قول یک قماندان محافظین ایرانی گفته شده که آن کشور در نظر دارد تا کشور خود را در تنگناه هرمز با راکت های بردی نزدیک مسلح سازد. سبب های ناشی از باران‌های موسیمی در شمال شرق هند حداقل 27 نفر را و 100 هزار نفر را بی خانمان کرده است مقامات هندی گفتند که بعد از چندین روز بارندگی مسلسل در حدود دو هزار تحت تحتیم و ها قرار گرفتند در حالی که آبی دریوها در منطقه در حالی بیرند شدن است بیستر شدگان در مناطق مرتفع پناب گرفتند بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده حالت اضطرار را در ایالت کنارادو اعلام نمود اوباما روز جمعه از خسارات قابل ملاحظه آتشسوزی هایی که صده خانه را از بین برده است دیدن کرد معمورین در روز جمعه گفتند 346 منزل مسکونی از روز سی شنبه تا به حال در آتشتوزی دره بلودو طامعی حریق شده و سی و هزار نفر در شهر کرو را دوست مجبور شدن خانه‌هایشان را را ترگویند. پلیس میگوید جسد یک نفر در یک خانه سوخته کشف شده و دو نفر دیگر لادرک میباشند. فورس در کنییا میگویند چهار کارمند امدادرسانی که به مهاجرین کار میکردن از یک کمپ نزدیکی سرحد به سومالیا روزجمه اختطاف شدند این افراد از کشورهای ناری کانادا پاکستان و فیلیپین میباشند یک کارمند کنیایی که در این حمله مجروح شده بود در شفاخانه جانسی پرده است مقامات عراقی گفتند که در نتیجه انفجار و های روز جمعه در این کشور حداقل 13 تن کشته و بیش از 50 دیگر مجروح شدند. گفته شده است که دو می تعبیه شده در موتورسیکلت همزمان در دو مارکت انفجار کردند. و سومی در نزدیکی یک مرکز پلیس در شهرک بلاد در شمال بغداد انفجار کرد. مقامات محلی گفتند که در این انفجار 7 تن کشته و 50 دیگر زخمی شدند. پیش از این مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی در جنوب شهر باقوبه حمله کردند که در آن چهار شبه نظامی کشته شدند. همچنین در نتیجه انفجار یک بمی کنار سرک در شهر باقوبه یک عسکر کشته شد و همین ترتیب مردان مسلح در شمال این شهر بر یک موتر حامل افراد ملکی آتش گوشدن و راننده آن را کشتن. روز شنبه دهی شعبان مطابق سی جوند. گزارش ها می رسانند که یک زلزله شدید در غرب چین در نزدیک سرحد قزاقستان رخ داده است. به اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا، شدت این زلزله 6.6 درجه ریکتر تخمین شده است. مرکز این زلزله شهر شیزی واقع در جنوب غرب چین خوانده شده است. رسانه‌ها از این رویداد گزارش دادند که در این زلزله 24 تن زخمی شده‌اند. گفته شده که وضعیت یکی از زخمی شدگان وخیم است. در نتیجه یک انفجار در شهری گردیز مرکزی ولایت پکتی ها دو پلیس کشته و ده غیر نظامی دیگر زخمی شدند. گزارشات می که این ماین در یک بایسکل جاسازی شده بود که در داخل شهری گردیز انفجار گردید. روز یک شنبه یازده شعبان مطابق اول جولای. دو از سربازان پلیس در ولایت برخ زمینی یک محکمه علنی به جرم قتل به 8 سال حبس محکوم گردیدند. در رسانه ها گفته شده است که این دو سال گذشته هنگام تلاشی بر یک منزل، دو را به قتل رسانده بودند. در نتیجه یک بمباران تیاره بی‌پیرویتی آمریکایی بر یک قرارگاه مجاهدین در 50 کیلومتری میرانشا در وزیرستان جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان 6 تن از مجاهدین به شهادت رسیدند. یک فرد مسلح با یونیفرم پلیس بر بالای آشوک ویلتانیایی غوللاباری نموده سه تنی آنان را به قتل رسانده است گفته شده است که این حادثه در یک پست امنیتی در ولایت هلمند رخ داد وزارت دفاع بریتانیا گفته است که این سه asker شامل گروهی از مشاوران پلیس بوده برای دیدار با بزرگان قوم به این پوسته امنیتی رفته بودند حد اقال 16 نفر روز یکشنبه در نتیجه حملات نارنجک در شمال شرقی کنییا در نزدیکی سرحد با سومالی کشته شدند این حملات بر دو کلیسا در این منطقه رخ دادند فرماندهان پولیسی محل گفته است افراد مسلح بمب‌های دستی را بر این کلیساها پرتاب نموده و زمانی که مردم از آنجا در حال فرار بودند بر آنان آتش گشودند این حادثه در شهر تاری رخ داد، شهری که در آن نیز قرارگاهی نظامی موقعیت دارد. به منظور مقابله با گروهی از شباب در سومالیا اعزام شدند. الشباب یک گروه از جوانان سومالی که با القاعده ارتباط دارد. کنیا بعد از آنکه در ماه اکتبر سال گذشته نیروهایش را برای مبارزه با الشباب در سومالیا مستقر زاخت شاهدی سلسله حملات شدیدی بمب بوده است. روز دوشنبه ja شعبان مطابق 2 جولای مقامات ولایت خوس میگوین سوبیروز دوشنبه نیروهای ائتلاف سیامای گذرا در شراهی خوست و گردیز کشته اند یک مسئول مطبوعاتی لوی اول ملی که نامش ذکر شود گفت که سیامای گذار در اثر حمله هوایی نیروهای آیساف در افغانستان میگویند در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار یک فرماندهان طالبان را بازداشت نمودند. در خبرنامه ای در مورد هویت طالب بازداشت شده چیزی ارائه نشده اما گفته شده است که این فرد بر ضد نیروهای افغان و بین المللی پلان حملات را طرح ریزی می نمود رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید ناریزایتی وقتی از جوانان از حکومت سبب تقویت صفوف مخالفین حکومت شده است صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح که در نخستین جرگه ملی جوانان اشتراک کرده بود تا برای آوردن صلح در کشور با هم بسیج شوند مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند اگر حملات راکتی از خاک پاکستان ادامه یابد شمار زیاد از خانواده های اولسوالی های سرحدی مجبور به ترک خانه هایشان میشوند دولت خان زدران فرمانده امنیتی این ولایت در یکی از رسانه های کفر گفته است که نا وقت شب دوشنبه 5 راکت از وزیرستان به اولسوالی برمل این ولایت پرتاب شده است این در حالی است که روز یکشنبه نیز از خاک پاکستان سی راکت بر های وازاخا و تروی این ولایات اصابت نموده است ایران تمرینات نظامی 3 روزه را به هدف نشان دادن قدرت ایران در برابر افزایش فشارهای غرب روی برنامه اتمی تهران انداخته است مقامات گفتند که این تمرینات در دشتهای مرکزی ایران روز دوشنبه آغاز یابد شامل راکت های زمین به زمین خواهد بود که بری خزانها قدرتی رسیدن به اسرائیل و جنوب اروپا را دارد این تمرینات یک روز بعد از آن صورت می که تحریم اتحادیه اروپا برای واردات نفت از ایران به خاطر مجازات اقتصادی تهران به دلیلی پیش برد برنامه هستهیش به اجرا گذاشته می شود مجاهدین مالی در وضعی دخولی مسجد را که در قرن 15 میلادی اعمار گردیده ب دروازه مسجد تینگ تو برای چندین قرن مسدود بود. زیرا مردم به با این باور بودند که باز شدنی آن امکان دارد که های را در قبال داشته باشد. گزارش‌ها می‌گویند که روز دوشنبه مردان دستار بر سر و تبر به در حال که شعارهای الله اکبر سر می‌دادند، دروازه دخولی این مسجد را شکاستند. گزارش‌ها می‌گویند در ظرف دو روز اخیر هفته یعنی شنبه و یکشنبه شش مقبره و آرامگاه تخریب شده‌اند. لوئی سارنوال بین بینالملی هشدار داده است که تخریب مقبره و آرامگاه های تاریخی جرایم جنگی شناخته می شود مقام های امنیتی ولایت لوگر می که حمله هوایی ناتو در ولسوره چرخیان ولایت سه غیر نظامی را کشتند دین محمد درویش سخنگوی والای لوگر می که نیروهای ناتو صبح روز دوشنبه در هنگامی گزمه پیاده هدف حمله مجاهدین قرار گرفت با گفته درویش این نیروها خواستار حمله هوایی شدند که در اثریان کشته شدند. حملی استشهادی در مرکز ولایت قندهار سبب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 23 نفر دیگر گردید. این حادثه در نزدیکی پوهنتون این ولایت رخ داده است. نزدیک به 300 دانش آموز دختر در ولایت‌های سریپول و جوزجان مسموم شدند. در همین روز در ولایت بامیان 58 دانش آموز دختر در یکی از ریسه های آن ولایت مسموم شدند. تلویزون دولتی ایران گزارش می‌دهد که زلزله‌ای به شدت 5.4 رکتر شهر فون و فوزورا در شرق آن کشور بلرزه در آورده است. در خبر آمده است که مردم در ساعت اول صبح دوشنبه در دیل تاریکی از بیم زلزله به جاده ها سرازیر شده بودند. مقام های اراقی گفتن انفجار بهم در غرب بغداد سبب کشته شدن یک پلیسی ترافیک و زخمی شدن هشت نفر دیگر شد. با گفته مقامات پلیس انفجار صبح دوشنبه انده که بعد از گذشت یک گزمه پلیس از محل رو خداد که یک مسئول صحیح کشته و زخمی شدن افراد را در این حادثه تایید کرد. گزارش ها از ترکیه میرساند که حدودی 300 تن از اطباء سوریه به ترکیه فرار کردند در میان این افراد 85 عسکری نیز شامل اند گزارش ها میرساند که 293 تبهایی سوری به شمول یک جنرال و چندین افسر دیگر روز دوشنبه دست به فرار زدند روز سه شنبه 13 شعبان مطابق 3 جولای گزارش ها از ولایت غزنی میرساند که مجاهدین در ورسوری اندر این ولایت یک قلعه تاریخی را توسط بم انفجار دادند مقامات امنیتی ویلایت بامیان میگویند که در اثر انفجار مانی کناری جاده در منطقه کریمیک و لسوالی کوهمرت چهار پلیسی ملی کشته و دو تنی دیگرشان جراحت برداشتند. در رسانه های کفری گفته شده است که یک موتری پلیس به مانی کناری جاده اصابت کرد که در نتیجه آن چهار منصوبی پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی گردید و یک عراد موتر دیگرشان نیز تخریب شده است. سپاه پاسداران ایران چندین میزایل پلاستیکی را روز شنبه آزمایش کرد که در جمع آنها یک میزایل با قابلیت برد دو نیز شامل است. انفجاری یک مانیتابه ایجاد dar در یک لاری در یک بازار پورسده ها در عراق 25 نفر را کشته روز 4 بود مسئولیت تامین امنیت تمامی مراکز ولایت و 122 واحد اداری جدید به نیروه افغان سپرده می شود در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مسیر راه قندهار و حرات بر یک متر مسافر بری ده تن زخمی شدند ما کوماتیو نتو در افغانستان میگوین کی مردی در پوشش لباس سربازان اردو افغانستان در ولوسوالی سعیدباد ولایت میدان وردک ګورلا باری کرده 5 تن یانور زخمی ساخته است انسوغانګوی اردو افغانستان ګفته است کی حمله کننده موفق به فرار شده از شورای سالم بار اجزای دو تن از پیلوت های آن کشور که تیاره آنان توسط سوریه سقوط داده شده بود در بستر بحر دریافت شده است رسانه‌ها از ترکیه می‌رساند که نیروهای بحری ایالات متحده اجزای پهپادها را رو روز چهارشنبه در آب‌های شرقی مدیترانه به دست آوردند روز پنجشنبه 15 شهریور مطابق 5 جولای حکومت پاکستان بعد از گذشت 7 ماه دیروز رای اقمالاتی را برای کاروان نیروهای ناتو باز نمود. پس از که 27 اسکر نظامی پاکستان در حمله هوای آمریکا در خاک این کشور کشته شد آن کشور برسم بر احتجاج راه اکمالاتی را بر روی ناتو مسدود ساخته بود آجانس خبر رسانی دولت مصر می گوید احمد نجاد رئیس جمهوری ایران دیروز با همتای مصری خود محمد مرسی تماس گرفته موفقیت او را آرزو کرده است سازمان امنیت و همکاری اروپا از کشورهای این سازمان خواست تا از دسترسی مردم به اینترنت جلوگیری نکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات در ویلایت کابل از افراد آن وزارت زخم برداشتند. وزارت دفاع میگوید که افرادی زخمی شده از مرکز تعلیمی این وزارت بودند که در جریان کمکرسانی زخم برداشتند. روسیه حضور خود در تاجکستان را به عنوان تضمین حیاتی ثبات بعد از خروج نیروهای ناتو از ونستان می‌پندارد. وزیر خارجه عراق می گوید که حکومت معلومات موسقی در دست دارد که جنگجویان القاعده جهت انجام حملات از عراق به جانب سوریا می روند و ای روز پنشنبه به خبرنگاران گفت که مقامات آن کشور نگرانند تا مبادا خشونت ها از سوریا به سر سر کشور گسترش یابد. فرماندهی ارتش ترکیه روزی پنجشنبه گفت که دو پیلوتی ترکی که به تاریخ بستودوی جون توسط نیروهای سوری سردگون گردیده بودن دریافت شده است. پایان اخبار شنماندگان عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر خداوند یارو یاورتان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 هو النصر لا تسقيه إلا دماء له الروح تدا والدماء تسير تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيلا هو النصر لا تسقيه إلا دماء له الروح تدا والدماء تسير تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيلا لا تسحيه إلا دماغ له الروح تهدى والدماغ تسير تريدون للعليا سبيلا وهلها سوى الموت المكرمات سبيلا اليك اسد قد على صرح مجدهم عظيم له عرض هناك وط ترى مد به النار اليهود كأنها لها عندهم دون الانام قبر اليك قد على صرح مجدهم عظيم له عرض هناك وط ترى مد به النار اليهود كأنها لها عندهم دون الانام قبر والنصر لا تسقيه إلا دماء له روح الله والدماء تسير دون للعد. سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيل والنصر لا تسقيه إلا دماء له الروح لا تهدى لا والدماغ تسير للعليا سبيلا وهلها سوى الموت دون المكرمات سبيل